علم از بحر دین پروردن است، نه از بحر دنیا خوردن، هر که پرهیز و علم و زود فروخت، خرمنی گرد کرد و پاک بسوخت.